یا بناید انی و لم اکو قد امرت عمر من کان قبلی و من تسرم گرد امر من خیلی طولانی نیست و خیلی عمر نکردم مانند اون سابقین که خیلی عمر می کردم من خیلی عمر نکردم امینون مهمنی می ثابتین خداوند در قرآن می‌فرماید نوح فلبس فیهم 1000 سنهن لو 50 عامو 950 سال نمیدونم پیغمبر بود یا 950 سال عمرش بود نوح علیه رو خدا تو قرآن می‌فرما همین روز مؤمنین فرمود من ماننده ثابتین عمر زیادی نکردم انی و الم اکو امرت عمر من کان قبلی بلو عمر سابقین طولانی بود ولی عمر من اونقدر نیست ولی فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم و سر تو فی آثارهم حتی تو که اهدهم. با دقت زیاد کارهای اونها را مطالعه کردم و آثار و اعمال اونها را بررسی کردم و درست در کارهاشون دقت کردم مثل اینکه یکی از اونا شدم و کعنی به الی من الیمن امورهم قد عمرت ما اولهم الی اخرهم تمام شرح جریانات زندگی های اونها را و تمام اسباب سعادت ها را تمام اسباب بدبختی ها را همه رو مطالعه کردم و مانند کسی که از اول دنیا تا الان زنده بوده از اول تا آخر تمام جریانها ها را و از می شود به این که فعرفت و صف و ظال که من کدره و نفعه من زرره می‌فرماد خوبیا رو بلدم بدی بلدم و برای تو انتخاب کردم چه چیزهایی مایی سعادت انسان هاست میخوام برات بگم چه چیزهایی سبب بدبختی و شقاوت انسان هاست میخوام برات بگم در این جمله امیر سلام الله علیه این مطلب رو این مطلبی که شاید همتون بلدین و میدانین درد می شود دقت کردن در تاریخ گذشتگان و به دست آوردن ملاک و منشع سعادتها و به دست آوردن ملاک و منشأ بدبختیها این برای انسان سرنوشت سازه یه جمله بسیار عالی امیر المؤمنین داره میفرماید یستدل علی ما لم یکن بما قد کان فان از روی کارهای گذشته میتونی آینده رو بفهمی زیرا امورات همه شبیه به همه چی میخواد بفرماید امیرالممنین در حقیقت این مطلب رو میخواد اینچنین بیان کند می‌خواهد بفرماید اون چرا که سبب سعادت اقوامی بوده است اگر اون شرایط برای ما هم جور بشه او سبب سعادت ما هم خواهد بود چیزهایی که سبب بدبختی اقوامی بوده است اگر برای ما اون شرایط جور بشه سبب بدبختی ما هم خواهد بود چون این نظام عالم یک نظام ثابت و علت و معلول هر حادثه‌ای که تو عالم اتفاق میفته ناشی از سبب خاص و علت خاصه و این حادثه ناشی از سبب خاص و موثر در یک اثر خاصه علت برای چیزی و معلول برای چیزی، اگر اون علت هر وقت جور شدی معلولش پشت سرش هست. اگر این علت حاصل شد، اون معلولش پشت سرش هست. اگر این اثر حاصل شد بدون که موثرش این چنینه، پس از روی گذشته می توانی بفهمی وضع آینده را یستدل علی ما لم یکن بما قد کان این همینه که شاید تو این کتابای جدید شاید شاید عرض میکنم تعبیر میکنن که تاریخ تکرار میشه شاید همین رو میخواد بگه یعنی مطالب تاریخی تکرار میشه یعنی سعادت ها هر علتی داشته است الانمون علتش تکرار میشه اگر بدبختی ها علتی داشته اون الان ممکنه تکرار بشه اگر اون شرایط جمع میشه بنابراین چرا قرآن هی قصه بر ما میگه؟ لقد کانه فی قصصهم هم ابرا الالباب یا ابراتون د ال؟ قسته ها ابرا هست فظور کیف کان اقب و ت ظلمین فظور کیف کان آاق و تول مفسدین؟ کیف کان هی تو قرآن میخواد نظر کن؟ هی قصه رو میگه؟ بگه فنزور کیف ها کانه آقا اینو چرا میگه؟ میخواد بگه افساد این اثر رو داره اصراف این اثر رو داره بنابراین اگه تو هم مصرف شدی همونه اگه تو هم مفسد شدی همونه آثار یک شی ناشی از یک اسباب خاص و معینی اصلا یکی از مهمترین اثر تاریخ همینه دیگه ما تاریخ باید چی مقونی؟ نادرشاه شما چه کنم؟ چه دردم میخوره؟ برای اینکه که از خمم به قوله حالا یه شاید فلسفه تاریخ و گیر بیارم منشه پیشرفتی کسی رو منشه بدبختی کسی رو علت عقب موندگی ها رو اینا رو پیدا کنم برای این نکونیم تاریخو که اون ملاکشو به دست بیارم اون جهتشو به دست بیارم اون وقت در خودم و در جامعهم بتونم اون جهت کمالش رو پیاده کنم برای این جهت نکونم تاریخو قرآن هم یه قصه میگه برای همین میگه قصه نمیخواد بگه، میخواد عبرت بگیریم، مخواد مسیله های کمال رو بیان کنه. شاید بعضی وقتا یه قصه میگه بعدم میگه و که ظالکه نجز ظالمین همه ظالمین همین, همین یه قصه میگه و که ظالکه محسنین همه نیکوکاران همین هست زابطش رو داره دست سرم گرد چه عمر من طولانی نبوده ولی در اطراف قضایی ها به با دقت مطالعه کردم تمام نیکیها ها و بدی ها تمام سعادتها و شقاوتها همه رو بلدم و همه رو منشأش رو میدانم میخوام خوباش رو بر تو اختیار کنم زوائدش رو بریزم خوباش رو بر تو اختیار کنم و برای تو بیان کنم پیره مرد چرا ارزش دارم اون پیرمردی که حالیش بشه ها یکی از جهات مهم توی روایات بیان کرده شاید میگه رأی الشخه امیرالممنین میفرمید رأی الشیخه احب الی من جلد الغلام نظریهای که یه پیرمرد میده این ارزشش بیشتر است از چابکی و زیرکی و سرعت کار یک جوان قدرت و توان بدنی ارزش داره ولی نظریه او به مراتب ارزشش بیشتر از توان جسمی ای اون توان روحی او از کجا پیدا شده اون از روی تجربه پیدا شده پیر مرد؟ هی سرد و گرم چشیده هی سختی و راحتی دیده فهمیده میزونای مطلب و این جوانه حالش نی؟ همجون میدوه این رو میزان نمیدوه حساب دستش نی؟ این مراجعه کردن به احوالات گذشتگان یک چنین کمالی برای انسان درست میکنه هیچ قرآن میگه او ارز میشد سی رو فلعر فنزرو کان عاقبت اللبین من قبل هم بگردین رو زمین و ببینید عاقبت گذشتگان شما چگونه بوده امر میکنه به این کار بر همجه هست که ما بتوانیم از های دیگران از روش‌های دیگران از کارهایی که برای آنها پیش آمد شده برای زندگی خودمون پند و اندرزی بگیریم. می شود به این که امیرالمؤمنین می‌فرماید به اینکه علیک تب مجالست اصحاب تجار ورمد بر تو لازمه که با اهل تجربه مجاالت کنی اونهایی که تجربه خیلی دارن علیه که به مجاالت احخوااب تجار فعنهها توم و عل هم به غلا و تعخص من هم به خصه اون تجربه هایی که اونا به دست آوردن خیلی براشون گرون تموم شده. یعنی عمرشون رو دادن اون تجربه ها رو گیر اون وقت میخوان این تجربه ها رو مفت در اختیار تو بذارن خیلی ارزون دستت میاد. با اینا مجالست کن یا یعنی افراد ای که میتونن از حوادث برداشت صحیح بکنن آخه بنده و امثال بنده هزار مرتبه اتفاق میفته یه بدبختی برام تیش آمد میکنه مکررم میشه فکرش میکن خب چرا این پیش آمد میکنه بر من؟ نمی گردم علتش رو پیدا کنم. نمیگردم اون اسبابی که منشه این ناراحتی و این از میشد بدبختیست گیرش بیارم. امروز میگذره گویک از میشه اعتناع نمی باز فردا متفااق میی باز هم اتناع نمی کنم. پس فردا رو. اینا ارزش ندونونه تجربه ندارن تجربهی که رو میزان صحیح باشه یعنی روش فکر کنه هر حادثهی که اتفاق میفته برش اگر حادثه راحت یا ناراحت کننده هر کدوم هست بگرده سببشو پیدا کنه چرا اینجور شده؟ این آدم بعد از دو دفعه سه دفعه ده دفعه،, دفعه،, دفعه که روی کاری فکر کرد اون سر نخش به تعبیل ونده دستش میاد و اون علتش به دستش میاد این است که تجربهش ارزش داره یه از این را, نرو این را بنابراین وماید با اهل تجربه مجالست کن زینا اینها عمرشون رو دادن و اینا رو گیرو و در مف مفت میخوام بذارن این ارزش داره فکر اونها و دقت اونها بنابراین در تاریخ هم همینه این یه کلمه رو ارز کنم یکی از بزرگان دیدم تو کتابش نوشته بود که این تاریخ خیلی ارزش داره ولی تاریخ هایی که در دسترس ما هست تاریخ ارزشداری نیست زیرا اولا در تحت عواطف و احساسات نویسنده ها واقع میشه اون نویسندهی ای که این تاریخ رو نوشته مثلا تاریخ زمان نادرشاه رو اگه با نادرشاه خوب باشه و و از طرفدار او باشه و زندگیش از طرف نادرشاه خوب اداره شده باشه هرچی نوشته خوباش نوشته یا یه مقداری هم خوبارو هم زیادش کرد اگه بعد باشه هرچی نوشته رو نوشته لذا که واقع بینانه ننوشته اولا در تحت تأثیر احساسات و وضعیت نویسندگان واقع میشه و در تحت سلطه حکومتها واقع میشه مگه حکومتهای ظالم نیذارن که ظلمشون منتشر بشه مگه حکومت های ظالمی که بدی ها منتشر بشه حالا زمان همون حکومت سابق همین جور مدهوم انقبت می حالا کسی اون تاریخ رو باید بخونه باش تا صبح دولتش بدنه که این هنوز از نتایج است از این چیزا می نوشتن تو کتابا خب حالا بنده چه بکنم حالا بنده ای که حالا اومدم مثلا می اون تاریخ رو بخونم این تاریخ بر من ارزشی داره؟ این نمایشگر واقعیاته نه نه حکومتهای ظالم میزارند درست واقعیات به دست مردم برسه نه احساسات نویسنده میذاره که واقعیات به دست مردم برسه لذا تاریخ و از اعتبار و ارزش انداخته اما اون تاریخی که دست نخورده به دست ما میرسه تاریخهای قرعآنه لذاس که اونی که ارزش داره و واقعیات رو میگه و حقایق رو بیان میکنه بدون کم و زیاد تاریخهای قرآنه قصه میگه قصه یوسف میگه ولی تمام مقصدش اونست که اون به های مطلب رو بیان کنه به نمیخواد بگه میخواد بگه کجاست که نیکوکاری سمر داره کجاست که بدکاری سمر داره کجاست که ظلم اثر داره و کجاست که عدل اثر داره اونا رو میگه میخوام این یه, وقت یه قصه ای که اگه بخواد ای کسی شرحشو بده، باید یه هفته بشینه هر روز روز یه ساعت شرح بده با چهار پنج خط مطلب و خاتمه میده ولی تمام نکات و دقایق اساسی که سبب کمال انسان اونجا بیان شده. بنابراین این اون تاریخی که ارزش داره تاریخ قرآنه که توش دست بردی نیست اون واقعیات اونجوری که باید دیده بشود دیده شده است. لذاس که قرآن رو باید یاد مطالعه کرد، تاریخش ارزش داره. ان نسی قصصهم عبره تون عبرت برای صاحبان کسانی است که اهل عقلند. لذاس که دقت کن در کارها از می شود به اینکه این هم مال این مطلب می شود به اینکه خب اون وقت در کارها دیگه روایاتش متعدد بود نمیخوام بخونم این کلمه رو بگم یه بنده خوده منصور دوانگی از یه بنده خدای عالمی از اصل خودش پرسید چیزی که موجب برای عبرت و پند من بشه برای من بگو اون عالم اثر منصور گفت از دیدنی هم بگم یا از شنیدنی هم گفت نه از دیدنی هم بگو که خود دیدی بگو گفتش که من دوتا از حکام بنی اومعیه رو دیدم یکی حشام ابن عبدالملک بود یکی هم اومر ابن عبدالعزیز بود این دوتا رو هر دو رو دیدم و شاید الان من تازه مرادیه نکردم شاید هر دوشون در تو بچه داشتم در تو پسر روزی که حشام مرد اینقدر پول گذاشته بود برای این بچه ها اینقدر تلاها گذاشته بود که به تعبیر بنده نمیدونستن چجوری تقسیم کدن ولی روزی که عمر ابن عبدالعزیز از دنیا رفت چند درهم یعنی چند تا مثلا به تعبیر خود اون پنجری یه, یه چند تا درهم برای بچهاش گذاشته بود و رفت عمر ابن عبدالعزیز یه حاکم عادلی بود حشام ابن ملک یه آدم ظالمی بود من این دوتا رو دیدم وقتی از دنیا رفتن او چقدر پول گذاشت و ای چقدر پول گذاشت ولی مدتی نگذشت بچه های هر دو رو دیدم بچه های هوشام رو دیدم گدایی میکنن تو کوچه و بچه های عمر بن عبدالعزیز رو دیدم هر کدومشون برای خودشون آقا یکیشون بنده منده الان یارم نیستم اینجور در ذهنمه یکیشون امسال تا اسب برای جهاد در راه خدا به اسلام تقدیم کرد از مال خودش خب این عبرت است خدا تو قرآن می‌فرمات ولی خشا الذین لو ترکو من خلفهم ذریه ضعفا بهترسن اونایی که بچه هایی دارن و بعد از خودشون بچه هایی از ظلم کردن به بندگان خدا چون اثر ظلمشون به بچه هاشون هم میرسه این حشام ابن عبدالعی گفت دیدم بچه هاشون تو کچه گدایی میکردم بچه اون بنده خدا دیدم حالا این اوبر ابن عبدالعزیز بوده که بازم شاید نگیم لحن الله به نیوم ولی آدم عادل و امیه بوده بنابراین عبرت باید گرفت از کارهایی که شده از کارهایی که میشه از حکومتهایی که حکومت کردن از میشهد این حدیثم دخونم تمام شد امیرالمومنین المومنین ما احسنت الا احد و لا اتا تا به هیچ کس احسان نمیکنیم. به هیچ کسم بدی نمی کنی اگر احسانی می کنی به خودت برمیگرده اگر بدی می کنی به خودت برمی, به خودت برمی ما احسنت ایلا احدین ولا لا اصعت قال الله تبارک و تعالی این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اصعتم فلحا. خدا تو قرآن می فرماید اگر نیکی کردی به خودت نیکی کردی اگر بدی کردی به خودت بدی کردی بنابراین همه بدی ها و خوبی ها به خودت برمیگرده یه خود خودت کن در کارهای دیگران و ببین چه روزگارهایی را گذرندند و چه اوزایی براشون پیش آمد کرد اونهایی که سبب سعادت اونها بوده درست بفهم و درک کن و اونهایی که سبب بدبختی اونها بوده اونم بفهم و دوری کن خیلی خوب تمام شد المؤمنو از صادق مفرمد المؤمنون حسن المعونه خفیف المعونه جید التدبير لمعیشته لا يلسع من جهر مرتين. مؤمن، این صفات مؤمنه اولا خیر و کمکش خیلی به مردم میرسه و سانیان زحمت برای مردم کم داره و از مزاحم مردم و حوار مردم و خرجش بر عهده مردم خیلی کمه ولی کمکش به مردم خیلی زیاده جید و تدویر برای معیشتش خوب تدبیر میکنه و روی میزان زندگی میکنه اون کس کلمه این که مطلوب منه اینه لا یول اومن جهرن مرتین از یه سوراخ دو دفعه نیش نمیخوره <تصفيق> یعنی اگه یه دفعه تجربه کردید براش بده میگرده علتش پیدا میکنه مؤمن اینه لا یول اومن جهرن بنابراین حوادس روزگار که هر روزش برای خود آدم و برای دیگران اتفاق میفته فرمود کفاکه عدبا لنفسک میخوای معدب بشی ببین کاری که دیگران میکنن چی چیشو بعد ادمیادونو نکن ببین چقدر راحته اگه درست دادم عمل کنه و کفاکه البته این تطمیه یه اولش هم یه مطلبی مربوطی به همین تجربه داره ولی من یادم نیست ورماید به اینکه که و کفاکه عدبا لنفسک به این که, و کفا و که, به این که اگر کفایت میکند برای عدب شدن تو و برای اینکه چیز درست حسابی بشی آدم حسابی بشی همینقدر کفایت میکنه کارایی که از دیگران میبینی و بعد میاد اون کارا نکن اگه میبینی یکی دروغ میگه اوقات تلف بشه نکن خودت اگه میبینی یکی سمیزن تو سر کسی تو اوقات تلف بشه نکن اگر این کارها رو نکردی خود خوری میشی چرا اینجوره که من کارهای دیگران رو نمیبینم اما خودم همون رو میکنم این همونه که نمیخوام از تجربه ها استفاده کنم از اعمال دیگران سرمشق بگیرم از میشود به این که به حضرت موسی جعفر سلام الله علیه از کسی ابن رسول الله اذنی و اوجه من رو کنم خیلی کوتاه باشه در فی کل شیع تراه و اینوک موئذر هرچی که چشت میبینه موئذر و همین حساب موئذر کار بعد از این میبینم موئذر کار خوب از اون میبینم موئذر و از که میبینم از افراد و از خودم و از حوادث روزگار همش موئذر اگه اهل آدم خوب شدن باشم باید زینا عبرت بگیرم و صلی الله علی محمد و علی محمد عجل فرجه از به اینکه یستدل الا ما لم یکن بموقت کن. البته ایتون اعجل بلاغه داره ولی بنده از سفینه نوشتم صفحه 146 جلد دو سفینه این جمله در اعجل بلاغه موجوده بس جوان اینا رو من از خارج گفتم اینا رو هیچی آدم بله علی به مجالسته اصحاب تجارب فا انها تقب و ما به الغلا این رو ازم شود در جلد آخر شرح نهج البلاغه ابن حدید ابن عبل حدید در شرح نهج البلاغه اونجا موجوده و اما بند صفحهش رو بلد نیست. دیگه چی آقا؟ ما احسنت ایلا احدیم جلد سیزده صفحه چهل و دو صفحه چهل دو جلد سیزده المیزان المؤمن و خفیف المعونه حسن المعونه الى آخر از وسائل ما که سه جلدیه سفه 444 جلد دو و اگر بخواد از وسائل دیگه پیدا کنید باب و جهاد نفس باب چهارم جهاد نه. منصورم همینجوری در ذهنمه جاشو الان مهیا ندارم ماویام هم همینطوری معاویه تو جلد هشتم بهارای قدیمه چه آقا؟ این هم شاید توی سفینه باشه در همونجا توی سفینه سفینه چی عرض کردم اونجا؟ سفینه رو؟ بله شاید همونجا باشه